عرق جبین سه سال بود ندیده بودمش بعضی دوستها هستن که آدم جوره دیگری دوستشان دارند و خیلی خاطرشان را میخواد. او هم از این نوع دوست ها بود در روزهای نداری بدبختی من را دوستانه با هم قسمت کرده بودیم یک تکه نان را در یک استکان چای می و میخوردیم. یک بارانی کهنه به هم داده. چون تو شلوارم پوسیده و سوراخ سوراخ کل تابستان را توی گرما و آن بارانی گشته بودم و مثل شیر هم شر شر عرق ریخته بودم یکی از دوستان دوره دبیرستانم دو هزار لیره بهم هم داده و گفته بود این پولو بگیر و باهاش یک آسبی چیزی را بنداز تا از این وضعیت خلاص بشی چون در تمام عمرم ارزه هیچ کاری را نداشتم دو هزار لیره را برده بودم و کف دست او گذاشته بودم او خودش را تاجری بزرگ و بیرقیب می دانست کسانی هم که پیش از من می شناختندهش حرفش را تأیید می کردند می سلطان بورس استانبول بوده چل پنجه نفر کارگزار بورس زیر دستش کار می کردند روزی دسته هزار لیره کاسب بوده بعد بعد آورده و دار و ندارش را از دست داده من هم که خاصیتم هست، هر جا آدمی باشد که روزگار بهش پشت کرده یا ارسومی و را خورده اند و بی پول منده، فاری پیدایش می کنه و باهاش دوست می شدم. وقتی با هم آشنا شدیم شاید ده بار پشت سر هم ورشکست شده بود. دیگر چنان به تنگ آمده بود که اگر سر و کله یکی از طلب کارهایش پیدا می شد و پولش را می خواست، یک چوب بر می داشت و دنبالش می کرد. اما هیچ وقت امیدش را به پول دار شدن از دست نمیداد. آدم اگر روی دنده بد بیاری بیفتد دیگر انگار چاره ای ندارد و روی همان دنده می رود. دو هزارلیره هم که از یکی از دوستان قدیمی دوران دبیرستانم گرفته بودم و به او داده بودم بارش را رو به راه نکرد. این شکست را نه من توی سرش زدم و نه او دوستیاش را از من دریخ کرد. بعدها مقداری از 2000 هزارلیره را که قرض گرفته بودم خورد خورد، سه لیره، پنج لیره به آن دوست قدیمی هم پس دادم اتفاقهای زیادی افتاد. دوستی من دیگر به گرمی سابق نبود. دیگر همدیگر را نمی دیدیم. چند وقت پیش با دوستی دیگر در حال صحبت بودم حرف او پیش آمد. گفت: "الان بیا برو ببین چه کار به هم زده. انقدر پولدار شده توپ نمی‌ترکونتش." "نه بابا، راست میگی؟ آره به خدا. دیگه روزی هزار لیره رو پول حساب نمیکنه. شوخی میکنی؟ راننده شخصی هم داره. مگه میشه؟ حالا که شده؟ با یه تلفن روزی ده هزار لیره کاسبی میکنه. داری سر به سرم میذاری؟ یه مجتمعی تجاری ساخته. الانم داره یه مجتمعی مسکونی میسازه. هیچ باورم نمیشد. توی سه سال چطور میشود این همه کار کرد؟ من شب و روز کار می کنم آن وقت اجاره خانم را هم به زحمت میدهم. در این فکرها بودم که یک دفعه دوستم برگشت گفت تازه هرچی هم بدهی داشته داره پس میده. این را که شنیدم یاد حساب قدیمی من افتادم نامی برایش نوشتم. شاید یادت مانده باشد گفتم شاید این یادش افتاده بود. کسی را فرستادم پول را گرفته آورد. با خودش تلفنی صحبت کردم گفت چرا خودت پیشم نمیای گفتم آخه خودم میدونم آدم نحسی‌ام خیرم به خودم که نمیره صغرن ضررم به تو نرسه گفت قبلا نمیومدی که گفتم قبلا تو هم مثل خودم آسفاست بودی چیزی واسه از دست دادن نداشتی خیلی اصرار کرد شدم رفتم. محل کارش آپارتمانی چهار پنج اتاقه توی یک مجتمع تجاری بزرگ بود. روی در ورودی تابلو زده بودند. امور کمیسیون صادرات و واردات عرق جبین. خیلی تحویلم گرفت. سوار ماشینش شدیم. رفتیم رستوران نهار خوردیم. میگفت تجارت خانه دیگری هم دارد. اسم آن را هم گذاشته خانه تجارت عرق جبین. گفتم، حالا بگو ببینم دوست عزیز. توی سه سال چطور تونستی این همه مالا انوال به دست بیاری؟ با عرق جبین ماشین گران قیمتش را نشان دادم اینو چطور؟ با عرق جبین بعد مرا به پاساژ خودش برد بالای ورودی پاساژ هم تابلوی بزرگی زده بودند پاساژ عرق جبین گفت یک پاساژ دیگر هم دارد می سازد. اسمش را هم گذاشته پاساژ کوچک عرق جبین دم غروب باز با ماشینش مرا به مجتمع مسکوی برد. آپارتمانی هشت طبقه و و دو واحدی بود. یعنی در هر طبقه چهار واحد و همه واحدها واحد ها شش اتاقه. از ورودی داخل که می شدم سرم را باران کردم و نگاه کردم نوشته بود. مجتمع مسکونی عرق جبین. دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم گفتم ببین چی بهت میگم؟ تو بهتر اسم این پاساش ها و مشتمه های تجاری و مسکونی تو عوض کنی. چرا؟ خب عوض کن دیگه؟ چی بذارم؟ بذار خانه تجارت کوفت، پاساش بزرگ کوفت، پاساژ کوچک کوفت مجتمعی مسکونی کوفت واسه چی آخه؟ گفتم خب معلومه واسه چی؟ از بس کار میکنم عرق جبین چیه؟ از چهار ستون و هفت چاک و که بدنم عرق میریزه پدرم در میاد اون وقت توی اجاره یه آپارتمان فسقلی توی زیرزمین موندم تو اگه پیشونیت یا به قول خودت جبینت چشمه آب مدنی هم باشه. تو سه سال نمیتونه انقدر عرق بکنه ولمون کن بابا با. فکر کردی حالو گیر وردی؟ بی حافظی از پیشش رفتم. هنوز 500 لیره ازش طلب دارن یعنی اگر کسی را بفرستم پول را میدهد اگر ندهد کارم است. برای درآوردن 500 لیره باید پنجه تا نوشته مثل نوشتهی که الان دارید میخانید بنویسم. یعنی هم جبینم حسابی عرق میکن I'm sorry now.